این ماه که الان هستیم ماه فروردینه و پریروز به مناسبت هم نام شدن روز فروردین و ماه فروردین جشن فروردینگان داشتیم کلمه جشن در عوستا یعنی روز سپاس و ستایش به سوی پروردگار از کلمه یسنه است یسنه بعد شده جشن حالا هر یک از این جشنهای دوازدهگانه یعنی هر ماهی که روز و ماه برابر میشه جشن داریم و دوازده ماه سال دوازده جشن داریم هر یک از این جشنها در قدیم در جاهای بخصوصی برگزار میشد مثلا جشن فروردینگان که مربوط به بفروهران و ارواح نیاکان این را در آرامگاه برگزار میکنیم جایی که به یاد درگذشتگان در اونجا نمازهای لازمه و عبادتهای لازمه انجام بدیم جشن اردی میدونید اردی موکل بر نور و پروغ و آتش و روشنایی، پس در قدیم در مر این جشن اردی را میگرفتن خردادگان خرداد موکل بر آب، از این جهت جشن خردادگان را در شهرها کنار رودخانه آب یا پارسیان میرن لب دریا اونجا برگزار میکنند و هر یک از این جشن ها یک جای به خصوصی داره مثل امروزه نیست که همه در اتاق سربسته جشن بگیریم این کلمه فروردین عوستایش میشه فروشی فروشی از دو کلمه است یکی فرا یعنی فرا یعنی جلو و شی یعنی شدن که ما هنوز میگیم کویشی، یعنی کجا میری پس فروشی یعنی فرارفتن رفتن یعنی پیشرفت یا فراگشت در زبان پهلوی شد فرا وهر. پس این فرا و بعدن شد فرورده فروردن باز به معنی فراگرده گرده یعنی تحول تبدیل شدن از یک حالی به حال دیگر و در لغت اوشتا این کلمه فروهر به معنی فرگشت یا بازگشت تحول تازه و نو کننده و پیشرفت دهنده در لغت نامه وقتی به فرگشت به معنی فروهر میشه روجو کنیم میگه فرگشت یعنی از نقص به کمال رسیدن یعنی به درجه بالا رفتنه پس فروهر یعنی روح پیشرفت، روح ترقی، روح تغییر و تحول روحی که ما را از درجه پایین میبره به درجه بالا این است که یک اوستای داریم به نام فروردینیشت و این اوستا یکی از بزرگترین است که از زمان بسیار قدیم به ما رسیده و شما اگر به فروردینیشت روی کنید اسم تمام شاهان و بزرگان و کسانی که خدمتی به دین و ملیت و کشور کردن حسوشون هست و درانجا در حدود چهل نام نام زنها هم هست زنهای بزرگ که حتی به مقام پادشایی هم میرسیدن مثل توران دخت و دخت و مانند اینها و اینها بر فروهرشون درود میفرستیم و میدونید وقتی که کشی فوت میکنه تا سی روز مووت کهافستان میخونه میگه از جاده روان فونک از جاده فونکست. از سی روز به بعد میگیم به روان یا به بهره روان فرونکس برساد ولی بعد از سی سال دیگه عشم روان یا عشم جاده نمیبریم، بگیم بر فروهر فرونکش دروی داد زیرا معتقدیم که بعد از 6 سال تمام افکاری که در عالم زندگی تو مغض و قلب و روح ما جا گرفته بعد از مرگ هم با ما میره به عالم دیگر و اگر کار خوب کردیم که ما این که در این دنیا اگر کار خوب کردیم همیشه وجدانمون راضی از ما ما شب خواب میبینیم که میان دسته گل به ما میدن تعریف میکنن، تمجید میکنن، تو روزنامه ها اسم ما را مینویسن و چون کار خوب کردیم وجدانمون راضیه و شب هم خواب خوب میبینیم ولی اگر خدای نخواسته کار بد بکنیم نفرات در زندگی بلکه حتی شب هم که میشه مثلا یه نفر که قتلی کرده کسی هم نفهمیده شب خواب میبینه که پلیس میاد در خونش کشون کشون داره میبرتش دادگاه اونجا ماکمه میشه یا حکم اعدامش پیش میاد یا حکم زندانش و خواب میبینه که پلیس داره میبرتش زندان ولی یک دفعه از خواب بیدار میشه و الحمدلله خواب بودم ولی این افکار و عقاید و این نیش وجدان یا رضایت خاطر همراه روح بعد از مرگم هست و همین است که بهشت و جهنم ما را به وجود میاره ما خودمون برای خودمون جهنم یا بهشت در این دنیا درست میکنیم و نه فقط در این دنیا یا تنبیه میشیم یا خوشبخت میشیم بلکه همراه خودمون هم میبریم ولی تا سی سال بعد از مرگ هنوز روح اون افکار و احساسات این دنیا رو با خودش داره و نمیتونه ول کنه و اینه که ما می میخونیم براشون و سال تا سی سال فرضه حالا اگر بعدانم خوندیم مانع نداره ولی تا سی سال واجبه و میبینیم مذاهب دیگر هم مثلا در بین اسلام نبش تا سی سال نباید بکنه ولی بعد از سی سال میتونن نبش غرب کنن و یه مرده دیگه بگذارن پلوی این مرده که در گذشته پس این سی سال این دوریش که روح به مدارج بالاتر انتقال پیدا میکنه و اون موقع دیگه باید گفت بر فروهر فلونکس درود داد حالا در ارستا و کتاب دینی این کلمه فروهر و فروشی یا فرورد به سه حالت به ما نشان داده شده یکی فروهر یا فروشی به شکل یکی از فرشتگانه مثلا در براساد می خونیم خرداد و تشتر و باد و پروردین پس اینجا می بینیم پروردین را جزء خرداد و تشتر و باد قرار داده حالا چرا رک خرداد فرشته موکل آب تشتر فرشته موکل باران باد یا هوا فرشته هواش و اینها زندگی ما لازم داره این چیزهای آب و باران و هوا و برای پیشرفت رو فروهر پس فروهر از جمله صفات عالیه معنوی بشر هستند که باعث پیشرفت ما در این دنیا و جهان دیگر میشیم. پس یک شکل فروهر به شکل فرشته است. باز میبینیم در اوستا فروهر را یکی از اجزای وجود ما میدونه و میگه وجود ما از تن و جان و روان و فروهر درست شده تن و جان و روان و فروهر تن این جسمانی است. بعد از مرگ متلاشه میشه از بین نمیره مرکب بوده تجزیه میشه حالی به حال دیگه در میاد و در این دنیا نابودی معنی نداره هیچ چیز نابود نمیشه یک حالتی به حالت دیگر میاد یا مرکب بوده تجزیه میشه و هر جز باز به راه دیگه مرکب میشه و یک موجود دیگری به موجود میاد پس تنه ما بعد از مرگ متلاشی میشه جان مثل چراغی که رو شمعه مثل روشنایی که رو شمه یا رو چراغه، تا موقعی که فتیله و روغن داره اون شم روشنه اون چراغ روشنه به مد اینکه این, این فتیلهش تمام شد یا روغنش تمام شد این چرا خاموش میشه و بر میگرده به نور ابدیات. یعنی جان هم از بین نمیره از جانب اون هستی کل آمده و برمیگرده میگرده به هستی کل روان روان یعنی روح و روان مسئول کارهایی که ما در این دنیا انجام میدیم و اینه که میگن بعد از مرگ روح محاکمه میشه گناه و ثوابش سنجیده میشه و اگر کار نیک کرده میفرستنش بهش کار بد کرده دوزخ و مساویه میرسن به همستگان یا برزخ حالا پس این فروهر کارشیه فروهر در وجود ما راه صحیح را به ما یاد میده و اینه که پارسی امروز میتونیم بگیم فروهر یعنی وجدان این وجدانه که اگر کار خوب میکنیم ما را خوشحال میکنه راه درست و نادرست را به ما نشان میده و ولی گناهی که ما میکنیم دامن فروهر را آلوده نمیکنه و بعد از مرگ فروهر پاک و درست و خوب مثل اولی برمیگرده به اصل خودش و در یکی از کتاب های پهلوی وقتی که میخواد این چهار چیز را توضیح بده میگه تن ما مثل درشکه است یعنی اون ساختمان آهنی درشکه جان ما مثل به درشکه است. روان ما مثل درشکه چیه و فروهر مثل مسافری که دو درشکه نشسته مسافر تو درشکه میشینه به شوفر میگه منو ببر فلونجا حالا اگر این شوفر تونست را خوب کنترل کنه اون وقت مسافر را میبره به سرمنزل مطلوبش ولی اگر اش نافرمانی کرد اطاعت از راننده نکرد تقصیر مسافر نیست تقصیر راننده است که نتونسته اسوارو خوب کنترل کنه پس فرآور مثل مسافری که میاد تو درشکه میشینه و اگر درشتی نتونست اون مسافر را به سرمنزل مقصود برسانه تقصیر خود اون راننده است و راننده روان ماست و همه مسئولیت به عده اوست پس این حالت دومی فروهره اولی فروردین جزء فرشتگان دومی جزبی یکی از چار وجود آدمیه و یکی دیگه فروهر که بعدا در زمان مادها و هخامنشیان این آرم پرچم زمان مادها و هخامنشیان کردند که اینها زردشتی بودند و چون اون زمان کتاب نبود کاغذ نبود و وسایل چاپ نبود همه چیز را با شکل نشون میدادند و همون فروهری که به شکل مرد بالدار بهشون داده میشه و این آرم ملی ماه نه آرم دینی البته مطلوب و منظور دین درش هست بله خیال نکنید که مثلا به قول بعضی این شکل اهورا یا شکل روح هست که پرواز میکنه و این اینها نه حالا اون زمان برای که دین زردشتی را به زردشتیانی که اون زمان هیچ کدوم سواد نداشتن حالی کنن این را اووردن به شکل یک مردی در یک دائره که دور کمرشه یه حلقه این حلقه حلقه زمانه است حلقه زاد و ولد است که ما باید کنیم یک زمانی روح ما در کال بوده جمادات بوده در حال عالم جمادات تجربه کرده وارد نباتات شده از اونجا تجربیاتی به دستورده وارد عالم حیوانات شده بعد وارد عالم انسانی میشیم بعد وارد عالم فروهران بعد ایزدان بعد امشاسپندان و آخر کار برمیگردیم به احرام ازدان. حالا این چند هزار سال چند میلیون سال طول میکشه هیچ کس نمیدونه یه چیزی نیست که فوراً دعا کنیم انا علیه راجعون ما را به عرصت خودش برگردون اینجا چیزی نیست ما واقعا باید این مدارج را طی کنیم و اینه که مولانا جلال الدین رومی موقعی که راجع به شش روز خلقت در اسلام توضیحات میده گریزی میزنه به فرهنگ نیاکانش و میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم؟ قیز مردم کم شدم دفعه دیگر بمیرم از بشر از ملایک سر بال و پر از ملک هم همچنان پر شوم. اون چه در وام هم شود پس این درجه ای که ما الان هستیم در طی سفری چندین کاروان سرا رو باید تیه کنیم چندین قعب خونه در طی مسافرت باید این پایین و اونجا استراحتی بکنیم و دوباره راه بیفتیم و یکی از شعرها میگه ما همه مسافر این راهیم و عجب این است که هر که زودتار به منزل رسیده براش گریه میکنیم حالا شعرش اینجوره همه مسافر راهیمو این عجب که گروهی بران که پیش به منزل رسیده میگریان در صورتی که اینا یه درجه از ما بالاتر رفتن پس فروهر یوزی از وجود ماست که در زمان قدیم این را تشبیه می کردن به یک مردی در حلقه زاد و ولدهای مختلف که باید کنه و پیشرفت کنه ولی با بال پرنده نه ببینید این بال فروهر سه عدیف داره اندیشه نیک کفتار نیک و کردار نیک پس ما باید با بال اندیشه و گفتار و کردارنیک مرتبا در حال عروج به مقامات عالیه انسانی و روحانی باشه باز می بینیم این حلقه یعنی روزگار دو نوار ازش جدا شده این یکی خیر یک شر و وظیفه ما انسان مبارزه با شر و طرفداری از خیر. که ما این که در پنامی ستایش میخونیم ما با میگه که زورانگام من دهشن و منشن و ببشن و کنشن و ویر و حوش و خرد میگه پر رزم و ایوزشن و پذیره دیوان یعنی ما باید بجنگیم روبرو بشیم و نابود کنیم بدی را این وظیفه ماست پس ما باید مبارزه کنیم بر علیه شر در این دنیا حالا این دو فروهر هم باز میبینیم به سه ردیف تقسیم میشه یعنی بداندیشی و بدگفتاری و بدکرداری را به زیر بندازیم برش مسلط بشیم و نگذاریم این اندیشه و گفتار و کردار بعد بر ما مسلط بشه. پس این تقریبا، اصول دین زردشتی را به این شکل در آوردن که در قدیم مردم که بی سواد بودن بتونن بفهمند و همیشه عکس بهترین نمودار یک فلسفه و یک منشه مثلا الان وقتی میرید بیمارستان برای اینهایی که سواد ندارن از یک طرف نوشتن لطفا خاموش باشید ولی اینای که ثواد ندارن عکس یک پرستاری کشیدن که انگشت در دماغ گذاشته یعنی خاموش پس این عکسی که امروز میکشند، یعنی خاموش اینن شبیه به اون شکل فروهره که اصول دین زردشتی را به ما نشان میداده پس امیدواریم همیشه در راه ترقی و تکامل و رسیدن به عالم معنوی پیشرفت کنیم زیرا این وظیفه ماست در این دنیا اگر نه مرتب ممکنه که اون عالمی که بودیم دوباره تکرار کنیم مثلا ما الان در درجه انسانی هستیم اما بعضی بچه ها عقب افتاده هستن بعضی یک ماه دو ما بعد میمیرن بعضی یک سال دو سال میمیرن اینها دوباره باید در این دنیا بیان و تکمیل کنند تا دوباره تکمیل نشن به مقام بالاتر نمی وقتی که یک جوانی یک, یک سال یا دو سال بدون تجربه بدون علم مرده روح این برابر این پیرمرد یا پیرزنی که هفتاد هشتاد سال تجربه کرده علم و دانش آموخته هیچ وقت برابر نیست پس ما بارها اگر خودمون را نرسونیم به مرحله کمار دوباره باید بیاییم حالا بعضی میگن این تن زندان روحه حالا هر چی میخواد باشه این تجربه باید بکنیم این عالم عالم تجربه است و هرکی زودتر مجرب شد او برده است امیدواریم ما همکاری بکنیم که فقط در این دنیا شاد و خرم و فیروز و کامکار باشیم بلکه بعد از مرگ هم اون مدارج عالی و بالا را بتونیم تلک کنیم. بارها شده موقعی که افراد تاشیل کرده دور هم جمع میشن عموما از هم میپرسند که چه نمازی بهتر و تر است خداوند چه نمازی را از ما میپذیرد و اون نماز باید چه جور باشه البته ما همه وقتی خوب فکرش بکنیم میبینیم که وقتی به زمین و آسمان و کوه و دریا و اینها نگاه کنیم <coughs> میبینیم ما که خود را اشرف مخلوقات میدونیم نمیتونیم این آسمان و زمین و اینا را درست کنیم پس خواهینا خواهینا معتقدیم که یک خدایی هست که اینا آفریده و به قول شادروان مولانا <coughs> میگه کی رفته ز دل که تمنا کنم ترا کی بوده این نهان که حقیدا کنم ترا با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم ترا یعنی خداوند با صد هزار جلوه ظاهر شده ما خورشید آب، زمین، کو، دریا، همه چیز ولی معتقد هستیم یک خدا اینها را فرده ولی اون خدا چیه هنوز کسی پی نبرده میگیم خدایا بلندی و پستی توی ندانم چهی هرچه هستی توی یا یکی دیگر از شعرها میگه به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خست به غعر دریا یعنی اگر یک برگ کار بتونه بره تای دریا ما هم میتونیم عقلمون به کنه فکر خدا پی ببره ولی میبینیم در طی دورهایی که خلقت بشر به وجود آمده هر کسی از زن و فکر خودش خدا را یه جوری دونسته یک شاعری یه نفر چوپانی را مسل زده که در زمان موسا این چوپان به موسا بر میخوره بعد این شاعر میگه که دید موسا یک شبانی را برا کو همین گفته خدا و ای اله تو کجایی تا شبم من چاکرت؟ چارغت دوزم کنم شانه سرت یعنی ای خدا تو کجا هستی من کفشتو سر تو شونه بزنم جامت شویم شپشهایت کرکشم شیر پیشت آورم ای محتشم ور ترابی ماری آید به پیش من تراغم خار باشم همچو خیش دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خواب برویم جای کت گر ببینم خانه اترا من دوام روغن و شیرد بیارم صبح و شام این دیگه چیز دیگه ندارد چوپون بود شیر و روغن داد. گفت ای خداید خونت کجاست به من نشون بده من هر روز صبح شیر و کره و اینا میان برات. ای خداید ای فدای تو همه بزهای من چیز دیگه نذارشم بز دای گفت همه این بزها فدای تو ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی هی و هیهای من این تصویر است از یک خدای چوپان و این خدای پنداری چیست چگونه انسان اسیر پندارهای خودش است خدا را نه اون چه هست بلکه اون چنان که پندارش میسازد و می و مجسبه و تندیس و بت برایش می میسازد او را می پرستد به قول مولانا هر کسی از دن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من پس ما نمیتونیم بگیم هر عبادت را باید چجور انجام بده چی بخونه چه کار بکنه معمولا الان این عبادت هایی که ما میکنیم به نظر یکی از اشخاصی که در دین تبهه کامل داشت میگه این عبادت هایی که ما مردم میکنیم چهار جوره سه جورش عبادت درستی نیست اول عبادت بازرگانانه یعنی ما در برابر هر عبادتی که میکنیم فورا از خدای چیزی میخواهیم ما را شفا بده پول به ما بده خطرمون رفع کن مسافراتمون سالم باشه و هزاران چیزهای دیگر و این نوع عبادت بهش میگن عبادت بازرگانان یه جور دیگه عبادت بندگان و بردگانه یعنی اگر خیال کنیم خدا مثل یک فرعون خونخواریه در آسمان هفتم نشسته یا مثل یک پادشاه مستبد نیست و ما باید با حال سین در حال اشک، ریزان و گریان به حضور خدا برسیم و مهر و عطوبت او را جلب کنیم این جور خدایی و اینجور جور هم سعی نیست یک جور دیگه عبادت نادرست عبادت معتادانه یعنی کسی که هر وعده نماز مرتب بخونه، ولی یه وعده اتفاقا نتونست بخونه، غذا میشه این وعدهی ای که نرسیده نماز بخونه به قدری روحشو ناراحت میکنه که خیال میکنه الان بیرون که بره آسمون سرش خراب میشه تصادف میکنه هزار خطر براش پیش میاد و این دفعه که میاد نماز میخونه برای خاطر خدا نیست برای تشفی خاطر خودشه پس این نوع عبادت معتادان هم عبادت سهی نیست ولی عبادت صحیح وقتی که ما فقط به داده پروردگار به بخشش هایی که به ما داده عبادت بکنیم. و ازش تشکر کنیم سپاس کزاری کنیم که پروردگارا را می ستاییم که این همه چیزهای خوب و نقض و زیبا نصیب ما کرد فقط این عبادت سرید البته در بین ملل و افراد خدا را همه یک جور متجلی نکرده ها خدا را واقعا یک فرعون خونخوار مستبدی میدونند که باید با خضو و خشوع تمام مهر او را به طرف خود جلب کنیم ها موقعی که در قدیم تائون و وبا و سیلو اینجور بلاهای پیش بیامد میگفتند خدا تشنه خونه باید خون ریخت که دیگه خدا از دیدن خون راضی بشه و دست از سر ما برنادره این بود که میرفتن یه دی را پیدا میکردن یا از اسرای جنگی بودند یا اشخاصی که به هر وسیله آماده میشدن اینها را سر میبریدند و خونش رو میریختن که خدا دیگه خون رو ببینه و از دیدن خون سیر بشه و دست از سر اونها برداره یک زمانی بود که اولین پسر خودشون را پدر و مادر برای خاطر رضاو خوشنود رضا خوشنودی خدا سر می بریدن مثل ابراهیم که پسر خودش را خواست قربانی کنه و اینجور چیزهای اینها میخواستن عبادت بکنند ولی نمیدونستند چرای درسته بعدا دیدن که نه قربانی آدم خوب نیست گوستبندار را می گاوها را میبریدیم، شترها را می, رو می که خداوند از دیدن خون اینها دیگه دست از سر مردم بکشه یا این قربانی هایی که براش پیشکش کردیم اینا بخوره و استفاده بکنه و راضی بشه پس تا حال این عبادت هایی که می کردیم و اون خدایی که در نظر داشتیم خدای پنداری بود خدای خیالی ما بود ما هنوز خدا را نشناختیم عشو زرتوشت موقعی که به پیامبری برگزیده شد همین فکر را هم میکرد در تاریخ زندگانی زردشت میخوانیم که در کودکی اون موقعی که ایرانی ها مذهب شرک و کبیت پرستی را داشتن زردوش را فرستادن مدرسه معلمی داشتن به نام برزدن کوروش تمام درس ها اون زمان هم کاغذ و کتاب و چاپ و اینام نبود باید یک چیزی معلم شفایی میگفت بچه ها یاد میگرفتن و علم سینه سینه منتقل میشد در در این مدرسه که رفت دید فقط معلم حرفش از این خداست و اون خدا چه کار میکنه و اون زمان بعضی خدایان نر داشتن و بعضی خدایان ماده داشتن و هر یکی هم مب به یک کاری بودن و بعضی ها بر علیه هم دیگر هم حتی می جنگیدن و از این حرفها و زردشت از شنیدن این حرفها اودا راضی میشد. بالاخره مدرسه را ترک کرد و در یک روتخانهی که نزدیک منزلش بود صبحا مینشست همش فکر میکرد که حقیقت را دریابه و به طوری که در گاتا یسنای 43, 44 و 45 آمده بارها توش پرسیده پروردگارا کی مهر فرزند را در دل پدر و مادر قرار داد کی آسمان را در بالا و زمین را در پایین قرار داد آیا این گناهکارانی که الان مردمان را در تحت فشار قرار دادند بعد از مرگ هم همیشه مختدر و توانا خواهند بود آیا نیکوکاران که حالا در عین بدبختی زندگی میکنند روزی میشه که خوشبخت بشن و مانند اینها از جمله راجب عبادت اشو توشت در, در یسناع سی و چار بند دوازده میپرسه کدام است آیین تو ای پروردگار و چیست آرزوی تو چه ستایشی سزاوار توست آن را آشگار به من بیاموز تا از برکات و انجام اون برخوردار گردم تا از برکات انجام آن برخوردار گردم پروردگارا به ما بیاموز که چگونه در پرتو راستی ستایش تو را بهجا آوریم یعنی ستایش واقعی چیه و چگونه در پرتوب آن سپار راه تو گردیم پس اشو در توش از سن ده, ده سالگی تا سن بیست سالگی همش در تفکر و تجسس در آثار خلقت بود که بالاخره مجبور شد از سن بیست سالگی زندگی اجتماعی را ترک کنه و در یک خاری کوهی در کوه شبلان اونجا به ذکر و فکر و پجوهش و جویش و پویش در اسرار پروردگار بپردازید و بعد از ده سال میفرماید هنگامی که وهمن به من رسید من چنین در یافتم یعنی اندیشه درست و نیک و البته این مبدع الهام در مذاهب مختلف فرق داره. ولی در اسلام و یهود میگن جبرائیل میاره پیغام را میده به پیغمبر ولی عشوزرتوش میفرماید به وسیله وحومن این وعی به من میرسه وحومن یعنی فکر و خیال و جویش و پویش و تجسس و تفاقیست و یکی از شعرها میگه بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به وقت نادانی و این است که ما در گاه هاون یک آیه است میگیم آهویرین پاشنم اشابرم و یزمیده آهویرین پرشنم یعنی پرسش های اهورایی یعنی از خدا هی بپرسید چرا اینجوره چرا اونجوره ما پرسش های اهورایی را که رد پرسش هاست یعنی سرآمد پرسش هاست میستطاییم و همیشه در اوستا ما را وادار میکنه که بپرسید سعی کنید بدانید پس در مذهب زردشتی مبدع وای مغز آدمه در مسیحیت میگن مسیح پسر خداست و از جانب پدرش وعی به او رسیده پس مب وعی در مذاهب مختلف فرق داره حالا وقتی که عشود در توش حقیقت را دریافت گفت ما خدا را نمیتونیم بشناسیم فقط میدونیم خدایی هست ولی اگر میخوایید خدا از شما راضی باشه خلق خدا را راضی کنید و اون که میفرماید خوشبخت کسی که در پی خوشبختی دیگران باشد و به قول سعدی عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست حالا این آیه باز اینجا میفرماید اشتا احمایی یهمایی اشتا که احمایی چی خوشبخت است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد این است فرمان و خواست احورا مزدای از این روی ما خواستاریم که با نیروی راستی و پایداری نیاز یک دیگر را برآورده سازیم ای آرمیتی ای مهر خدایی ما را در زندگانی از بخشش بینایی بینایی کامل یعنی وهما برخوردار ساز باز در یاسنای 34 چار بند 14 میفرماید پاداش گرانبهای مزدا از آن کسی که در کالبد جسمانی و جهان مادی با منش پاک به کار و کوشش پردازد و در آبادانی و پیشرفت جهان بکوشد و بدین وسیله خوشنودی عهورامزدا را برآورده سازد پس عشو در توش میفرماید اگر می خواهید خدا از شما راضی باشد خلق خدا را راضی کنید و از این جهت میدونید زمانی که عشو در توش ظهور فرمود مملکت ایران متمدن بودند، شعب بودند، حکومت مختدری مسلط شده بود و مردم اجتماع را میبایستی تشویح کنه خوب بشه فرد همیشه فکر استفاده خودش هست در بین حیوانات هم همیتوره حتی گیاهان هم همیتوره پس پیغمبر نمیاد راه نجات فرد را نشون بده. پیغمبر آمده راه نیات اجتماع را نشون بده و بگه چه کار بکنید که اجتماع شاد و خرم باشه و وقتی اجتماع شاد و خرم و نیرومند و ثروتمند بود اون وقت شخص میتونه شاد و خرم باشه جشن بگیره وقتی محصولش درو میکنه بیاد جشن بگیره ولی وقتی مردم گریان و نالان و بدبخت و بیچاره باشند حتی آدم نمیتونه خنده بکنه در اون جماعت و این از کشف در توش فرمود خوشبخت است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد و اون وقت میفرماید عبادت سه جوره ستایش با منش ستایش با گویش و ستایش با کنش ما با فکر خودمون خیرخواه دیگران باشیم دشمنی نورزیم دشمن یعنی بدندیش حسود نباشیم همه را با چشم پاک نگاه کنیم این بهش میگن اندیشه نیک یعنی اگر عبادت از روی اندیشه نیک بکنیم این عبادت قابل قبوله و لازم نیست حرف بزنیم نیتمون خوب باشه عبادت با گفتار اینه که همینجوری که الان معموله دو گفته چون نیم کردار نیست و عبادت با کردار اون بالاتر از همه است که سعدیان فرموده عبادت به جز خدمت خلق نیست تسبیح و سجاده و درغ نیست پس امیدواریم ما به پیربی از پیامبر بزرگوارمون و فرهنگ نیاکانمون اگر بخواهیم خدا را از خود راضی و خوشنود کنیم سعی کنیم خلق خدا رو راضی کنیم همه مذاهب میگن دست خدا با جماعت است. وقتی جماعت راضی و خشنود شد خدا هم از ما راضی و خشنود باشه. بارها همکیشان پرسیدند چرا ما مثل دیگران مراسم درگذشتگان را در روزهای هفته و چهلم انجام نمیدیم و ده و سی روزه و سال انجام میدیم؟ پاسخش اینه که ما پیررو سال شمسی هستیم. نگماری و ایام هفته را هم میدونید هزاران سال پیش بشر اولیه فقط هفت سیارات اولیه را کشف کرد. و اینها بای و کلانی ها و, و اینها بودند اینها هنوز دوره شرک، و طبیعت پرستی و بود پرستی را می و وقتی این هفت سیارات کش شد شروع کردند به پرستش این سیارات در هر یک از روزهای هفته مثلا روز یک شنبه روز پرستش خورشید بود که هنوز هم در زبان انگلیسی سنده یعنی روز پرستش خورشید، منده روز پرستش ما دی روز پرستش مرری همینطور مشتری و زهل و زهره و اینا و از اون جایی که ماه قمری هم داشتند یعنی وقتی ماه پیدا می شد می اول ماه دوباره که ماه پیدا می شد می یک ماه تمام شد ماه دیگر و این توعم کردن ایام هفته را با ماه نه برابر گردش ماه به دور زمین و نه برابر گردش زمین به دور خورشید. یعنی یک ماه کامل نیست بیست روزه حالا چه شد که ایرانیان آمدیم و سال ماه شمسی را کش کردیم در روایات ما آمده نخستین پادشایی که گذار حکومت اجتماعی ایرانیان شد جمشید بود تا زمان جمشید اکثر یعنی همه آریا ها دام پرور بودند مدام در حرکت بودند برای یافتن چراگاه برای گوستندان پس یک جا نمیتونستن بمونند زمستون میرفتن جای گرم تابستون میوممدن جای خانک و از این جهت ما آریه ها حتی در زمانی که دوره شرک و طبیعت پستی را میگذراندیم نه معبد می ساختیم و نهبوت برای که ساختن معبد برای مردمانی است که یک جا ساکن و اینها مرتب در حرکت بودن پس لزومی نداشت معبدی بسازند. و هم نمی ساختن برای خدایانشون برای که حرکت دادن بوت ها رو مدام رو اولاغ و گاو و قاتل و اینها کار بسیار سختی بود پس آریاهای اولیه پیش از زرتشت با وجودی که مذهب شرک و طبیعت پرستی اینها رو داشتن نه معبد می ساختیم و نه بوت برای خدایانه و اولین قوم آریایی که بوت را ساخت این هندی ها بودن بیدونید هندی ها از نژاد ما آریای هستن که اینها را می دن هندو ایرانی ها و این هندو ها چون وقتی که وارد جنگل های بزرگ هندوستان شدن اونجا دیگه دامپربری لزومی نداشت انجام بدن حتی میوه و سبزی های جنگلی هم زیاد بود پس افتادن فکر روح و اون دنیا و کم کم آمدن برای خدایانشون هم اشکال مختلف درست کردن ولی در همین زمان جمشید بود که ای از ایرانیان در این سرزمینی که چهار فصل داره شروع کردن به کشاورزی ولی دیدن که عمل کشاورزی با سال ماه قمری جور نمیاد کشاورز باید بدونه چه موقعی زمین شخم مزاره چه موقع تخم بپاشه تا بتونه به موقع محصول خوب و رسیده به دست بیاره و چون سال ماه قمری 28 روز بود در هر ماه کلی عقب می افتاد و برابر چهار فصل سال ایرانی نبود و کشاورزان نمیدونستند کدوم ماهی بیان زمین رو شخ بزنند یا تخ بپاشند پس در زمان جمشید مغان ایرانی یعنی ستاره شناسان ایرانی به کمک زیگ که بعداً به عربی شد زیج و ستارلاب یعنی ستاره یاب که بعد به عربی شد استولاب اینها آمدن رو آغاز سال ماه شمسی رو کشف کردن و کشفشم اینجور بود که قبلا دیده بودند که دوازده بروج در سال دور زمین حرکت میکنه الشح حمل و ثور و جوزا و اینها اینها اول بهار دیدند اون اولین ستاره ای که در پوزه برج بره یا حمل قرار گرفته این اول بهار میشه و از این به بعد بازیچ کردن ستاره هر سال اون ستاره شناسان اولا یک چاهی میکندن عوضی که دوربین به طرف آسمان بره چاه میکندن دهنه چاه خیلی گشاد و یک نفر منجم اون تای چاه میرشست و وقتی اولین ستاره پوزه همرز در آسمان سری چا پیدا میشد یک زنگی میزد اون بالا زنگ به شدا در میومد یک تنابی بود و فوراً به پسال قصر پادشاه و به جاهای مهم خبر میدادند که سال نو شده و این سال شمسی معروف به سال جمشیدی و اول سال شمسی هم نوروز جمشیدی بود بعد آمدند باز روز ماه یعنی ماه اسم مخصوصی روش گذاشتن و اول ماه را فروردین و وسط ماه را میر قرار دادند. میر هم میدونید به معنی عدل و داد و راستی و درستی و پیمان داری بود و چون ماه میر با ماه میزان یعنی حمل و سور و جوزا میبینید ماه میزان ماه هفتمه ماه مهرم ماه هفتمه پس گفتن مهر دار و این مهر شد اولین داور دادگر داور یعنی غازی بودیم پیش از در توشت که مهر ترازوی در دست داره و گناه و ثواب مردگان را در روز چارم می سنجد و اگر گناه بیشتر شد کفه گناه پایین آمد یعنی ببره جهنم اگر ثباب بیشتر شد در بهشت. و اگر هر دو کفه برابر بود همیستگان یعنی همیشه یکسان یا در عربی میشه برزخ و این پیش از زردوش. این عقیده بین قوم آریا بود و این مربوط شد به آین مهمیترایی یا آین مر و چون این آین به فکر مردمان متمدن آن روز برابر می آمد آین مر به سرعت در زمان هخامنشیان و مادها به حتی به یونان و روم و اینها هم رسید و این فرشتهی که پشت دیوار دادگستری ما یک ترازوی در دستشه و علامت دادگستری همون مهر اروپایی شده دوباره به ایران و در پشت دادگستری ما حق شد پس روز و ماه ایرانیان برابر اون مغان و معبدان و ستاره شناسان اون زمان چنون درست شد که اکنون سال و ماه شمسی را به قدری ما تکمیل کردیم که میتونیم بگیم سال دیگه چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای سال نو میشه ولی هنوز سال قمری کسی نمیتونه بگه اولش کیه و آخرش کیه برای که نرو حساب گردش ما به دور زمینه، نه نرو حساب گردش زمین به دور خورشیده با هیچ یک از اون عوامل طبیعی به همسان نیست و این باعث میشه که سال و مای شمسی ما را بعدا یونانی ها و رومی ها وقتی مسیحی شدند گرفتند و دوباره سال مای شمسی وارد کشورهای اروپایی شد که الان جانوی و فوریه اینا میگن و درست با گردش زمین به دور خورشید تعیین میکنند پس ما در چون پیرو سال شمسی هستیم کاری به کار هفته و چهلوم نداریم ما سومو، و چارام بعدش دهام بعدش سی روزه بعد سال یعنی ده تا دهتا و سال مردگان هم به طوری که تحقیل کردن حد اکثر تا سی ساله سی سال یعنی یک نسل. یعنی وقتی پدر و مادری در می فرزندانشون اقلن سی سال زنده هستند، پس وقتی گفتن سی سال یعنی یک نسل یعنی نوه لزومی نداره سال بامس و ممس بخونه تا دختر و پسر زنده هستند، اونها موظفن سال و گهنبار و مراسم دینی در گذشتگان پذر و مادر خود را انجام بدن ولی گهنبار تا زمانی که اون وقف گهنبار وجود داره اون باید انجام بدن و اون مدت معینی نداره ولی اگر یکی خاص یک جایی که اول ساکن بوده و اونجا پدر و مادرش زندگی میکردن و زمین و باقی داشتن و وقف کارهای دینی پدر و مادرشون کردن فرزندان اینا کردن اینها میتونن اون تبدیل به احسن کنن یعنی زمین وقفی را در اونجا بفروشن ولی پولش در اون جایی که زندگی میکنن اقامت دارند، یه چیزی بخرن و همین عمل وقف را مثل اون یکی سابق انجام بدن نمیتونن بفروشن و پولش بردارن برن میتونن زمین های را تبدیل کنن به احسن یعنی یک جایی که دیگه ارزشی نداره براشون یا نمیتونن گهنبار بخوانن مثلا زردشتیانی که از یزد و کرمان آمدن تهران اگر خواستن گهنبار را در تهران بخوانن هیچ مانعی نداره بعضی ها خیار میکنن حتما اروا میان تو خونه که در یزد و کرمان داشتن و اگر جای دیگه به همبارشون یا سالشون بهن اروا حاضر نمیتونم بشن. ما درباره اروا خوب نمیتونیم تصورات خودمون را حقیقت بدونیم. اروا مثل موجن. حتی تو دیوارم میتونم رد بشن. هر آن هر جا خدا بیاموزی دادند یا یک روشتایی براشون خوندن، این موج فکر ما و موج عوستا ما مثل که سنگ در حوز میندزی و موج تولید میکنه و میرسه تا آخر حوز و اگر حوز بی پایان باشه این موج میرسه تا آخرش همینجور موج عوستاخانی و موج خدا بیاموزی و یادآوری خوبی از درگذشتگان، در هوا موجی تولید میکنه و اروا در هر جا باشن به اونها برمیخوره و اگر موج نیک باشه حتی دانشمندان تعین کردن که موج فکر هم رنگ داره و بهترین رنگ ها رنگ سفید و سبز و زرد حالا اگر این رنگ به ارواه برخورد شاد و میشن و اگر خدای نخواسته لعنتشون کنیم نفری نشون کنیم یا بدیشون بگیم موجش رنگ سیاه یا مشکی یا سرخ میشه و اون هم وقتی موج رسید به اونا فوقلاده متاسر و غمگین میشن پس بدانیم هر فکری که درباره دیگران میکنیم موجی ایجاد میکنه و همین موجی که الان رادیو و تلویزیون و تلفن و اینها میگیره و به ما خبر میده و روزی هم شاید بیاد که دیگه لازم نباشه ما حرف بزنیم همون موج فکرمون به دیاری میرسه و اون وقت حسر میکنه یکی از شعرا میگه من برانم که یکی روز فتح در آلم که فروغی زد اون کاخ سخن را بنیان به نگاهی همه گویند به هم راز درون هم بخندند و بگریند و برارند فخان اون وقت بعد میگه که اون به اون کلمات نگاه هم نگهنامه چو شهرنامه شود جا یعنی اون علائیم نگاه ما به هم دیگر وقت نوشته میشه و مثل شاهنامه باقی بمونه. حالا امیدوارم ما هم مطابق دستورش در توش همیشه اندیشمون نیک باشه اندیشه بعد هم به ضرر خودمونه و هم به ضرر طرف هم به ضرر جامعه و این از که همیشه دستور میده اول پیرو به احورامزده باشیم بعد از احورامزده خرد یعنی اول ارمز بعد بهمن بهمن یعنی عقل و خرد و دانش و اینه که در پرسته پیش من عرض کردم که ما زردشتیان تابع سالنمای خرشیدی هستیم یعنی تمام کارهای دینی ما ام از روزهای سال و گوهنبار و کارهای درگذشتگان و اینها باید مطابق تاریخ شمسی انجام بدیم گرچه بعضی ملت ها هنوز دنبال رو به تاریخ غمری هستند و اونها هفته و چلوم دارند ولی ما مطابق شمسی بعد از سوم و چهارم ما دهم ده داریم بعد سال و, و همه کارهای دینی ما باید طبق شمارش فصل چهارگانه و ساعت روز و شب فصلی باشه شما اطلاع دارید وقتی که در زمان جمشید آمدن سال ماه شمسی را کشف کردن، اونها آمدن سی روز ماه حساب کردن. و مدتی همین میگذشت و نمیفهمیدند که این سال کم کم داره جلو میفته اووضی که همراه گردش زمین و آفتاب این بعد وقتی که اشور در تشت آمد، یک راستخانه خود آن در سیستان تأثیر کرد و متوجه شد که سال 365 روز و 6 ساعته. پس آمدن 5 پنج روز پنجم ام بهش اضافه کرده و سال شد 365 روز. و هر چهار سال یک دفعه ام آمدن چار تا 6 ساعت که شد 24 ساعت یک روز اضافه میکردن ولی بعضی آدم هایی که متوجه نبودند، حساب گردش زمین و ماه و خورشید و اینا در نظر نداشتن میگفتن همون سال ماه قدیمه که پدرای ما میخوندن ما هم باید بخونیم در شدتی که ما باید تابع گردش زمین به دور آفتاب باشیم، گردش ما به دور زمین باشیم و تابع چهار فصل سال باشیم. و اگر روز و مامون مطابقت نره با چهار فصل سال، با شبانه روزی، با 365 و, و, و شش ساعت، تاریخ ما غلط میشه. و اینه که اینایی که قدیمی هستن این چهار سال یه دفعه حساب نکردن حالا 8 ماه عقبن یعنی سال اگر برایشون باشه روز و ماه قدیمه بخونن قبول نیست مطابق هفته 18 تور که همبارشون بخونن غلطه بعضی ها استدلال میکنند میگن که ما وقتی وقف نوممون توسط بامثمون نوشته شد نوشته سال مای قدیمی گامبار بخونیم متوجه نیستند که اون زمان سال مایی که در ایران متداول بود بین برادران مسلمان های ما حمل و سور و جوزا بود سالمای غمری اونم به عربی و اغلب پیر مرد ها و پیر زن ها وقتی که شناسنامه مون نگاه کنیم بیبینیم فلانی در بلج حمل متولد شد در برج سور متوجه شده اون موقع فروردین و اردیوشت اینا نبود حالا برای اینکه نشون بدن که مطابق مای عربی مسلمون نیست نوشته بودن گه هم بار مال قدیمی بخونی قدیمی یعنی مال زردوشتی ها و این قدیمی حالا که فصلی هست نشون نمیده که قدیمی یعنی فصلی نخونن این اشتباهه اون موقعی که تو وقت نامه نوشتن سال و قدیمی بخونید یعنی سال و مای زردوشتی نه سال و مای اسلام و اگر تاریخ گهنبارخانی را در نظر بگیریم میبینیم چهره اول گهنبار که وسط بهار اتفاق می‌افته، یعنی وسط اردیبهشت بهش ما بهش میگیم میدیو زرم میدیو یعنی میان زرم یعنی بهار گنبار دوم وسط تابستون باید بیفته میگه میدیو شهم گنبار سوم آخر تابستون میشه پی تا شهم گنبار چهارم پاییز ایاتران گنبار پنجم وسط زمستان میدیارم میلیارم یعنی میان آرامش چون کشاورزان، دامپروران میون زمستون بر فبارون و, و هوا سرد کشت و کار نمیشه کرد. اون موقع موقع آرامش کشاورزان بود. پس این گمبار میلیارم می، هم میلیارم بله یعنی میان زمستون، میان آرامش و گمبار آخر، نزدیک نوروزه یعنی پنج روز پنج آخر سال موقعی که شب و روز برابر میشه و رستان اسمش گذاشتن هم ممس پت میلییم. هم یعنی هم اندازه می پت و دیارم یعنی شب و روز، یعنی هم اندازه شدن شب و روز. و این گهنبار همبار هم از پت میرییم که آخر ساله، از مهمترین گهنبار بوده و در قدیم وقتی میخواستن خواستن را جا به جا کنن گهنبار را نمی باستی ببرن جلو اگر یک چهره نمی راشیدن می باستی بیارن یعنی چهره بعد بیارن و بهترین چهره گهنبار گهنبار هم مسبت میلیمه یعنی آخر زمستون موقعی که ذخیره آزوغه مردمان تهمی کشه اون موقع است که مردم بیشتر محتاج کمک و یاری همدیگر هستیم و در عوستا یتا ویدیو میخونیم میگیم خشترمچا آ یم بیو ددد بازداره خشترمچا هورایی یعنی خوشمودی هورایی ما مال که درگوبیو یعنی بینوایان و درویشان و مستمندان را ددد واسدارم یعنی دستگیری کند یعنی خوشمودی اهورامزدا در خدمت به خلقه اگر میخوای خدا از شما راضی باشه باید خلقه شما خدا از شما راضی باشه مسئله معروف میگن دست خدا با جماعت است این از که گهنباد آخر سال که مردم دیگه ذخیره غذایی و بنشن و آزوغشون تکشیده اون چهره از همه بالاتره. و میبینیم باز این ماهای آخر سال سه ماه آخر سال که زمستونه مثل ارمزد و بهمن و اردیوش میشه ماه دی دی یعنی خدا دی دادار یعنی مسابق میشه با اورمزد بهمن یعنی مطابق با بهمن اورمزد و بهمن وقت اسپند تقریبا سپند اورمزد میشه یعنی مهرو محبت و عشق پاک از این موقع آخر سال به خلق خدا خدمت کردن اجرش خیلی بالاتره حالا ما میدانیم که همون طوری که نوروز در زمان جمشید شاه پیشدادی برقرار شد چون در زمان جمشید بود که ایرانی پی به گردش زمین به دور افتاب بردن و اونا آمدن سال شمسی را به وجود آوردن و این گهم همبارها باز در زمان جمشید درست شد چرا میگیم زمان جمشید اولین پادشاهی که یک حکومت مستقری بر ایران و آیاها به وجود آورد زمان جمشید بود و اولین ملتی که متحد میشن و یک حکومتی برقرار میکنن بین خودشون شرط میذارن که نسبت به بینبایان و افتادگان و دردمندان کمک بکنن پس این کمک کردن به هم دیگر یه چیزی نیست که فقط زمان عشودرتوشت به وجود آمده باشه هزاران سال قبل از عشودرتوشتم وقتی یک اجتماعی تشکیل شد خواه اونی که دردمند افتاده است کمکش می کند حالا وقتی یک پیغمبر بزرگی میاد مثل عشودرتوشت این پیغمبر سه کار میکنن اون چه خوبه در زمان خودشون باقی میذارن. بشی که میدونید اشو در توش وقتی آمد جشن صده که زمان هوشنگ به واسطه کشف آتش بود جشن میگرفتیم ایرانی ها زردوش اینا باقی گذاشت نوروز جشن آغاز سال که زمانی جمشید بود در دوش باقی گذاشت مهرگان که در زمان فریدون تشکل شده بود باقی گذاشت پس پیامبران وقتی میان اون چه خوبه در میان جماعتشون باقی میذارن اون چه بده از بین میبرن و خودشون یه چیزهای تازه میارن پس این سه کار, کار هر پیامبر بزرگیه که باید انجام بده و انجام خواهد داد. پس اینه که در توشت گهنبار را و نوروز و مرگان و صده را و بسیاری از منحیات یا کارهایی که بعد در زمان خودش بود مثل قربانی که حیوانات مثل خوردن مشروبات الکلی به خصوص اون مشروب خوم مثل بدپرستی مثل شرک مثل طبیعت پرستی اینها را از بین برد و دین خدا آورد پس ما باید بدانیم که روز شماری مازردشیان مطابق گردش زمین به دور آفتابه و ما به دور زمینه و الان میدونید باز یک نقشه بود در تاریخ شمسی که الان دولت رفت کرد یعنی مثلا میگه اول نوروز روز یک ساعت جلو ببرید اول مرگان یعنی شش ماه دوم یک ساعت عقب ببرید چرا؟ برای بله که دوباره روز ما با هم تطبیق میشه میدونید اول نوروز روز و اول مرگان روز شب برابره اول نوروز روز روز بزرگ میشه و شب کوچاک و اول تیر ماه یعنی سب ماه بعد بزرگترین روزه و کتا ترین شب دوباره شب و روز سعی میکنن همسان بشن تا دوباره اول مرماه مثل اول نوروز شب و روز برابره از حالا شب داره روز به روز بزرگ میشه و روز کوچک و اول دیما که شب ده جور میگیم طولانی ترین شبه و کتا روز و از روز اول دی دوباره روز بزرگ میشه شب کوچیک تا دوباره برابر بشه حالا اگر یک نفر آدم نفهم باشه بگه ما کاری به کار حکم دولت نداریم ما ساعتمون همیشه میخواییم مستو گذشته باشه در نتیجه چی باشه مدرسه رفتن بچه ها تو زحمت میفتید زندگی اجتماعی تو زحمت میفتید برای که این تعصب به کار بودید که هر سال و ماهی که پیشتر بود همینو اینو باید اجراب کنید و این غلطه ما باید متی خورشید و ماه و زمین و اینا باشیم. اونا نباید متی ما باشن پس عشوزت توش فرمود سال شماری شمسی یعنی سال خورشیدی. باید تمام اعمال روزانه ما اهم از نماز و روزه نماز و نبر روز نبور قدیم غلطه بعضی بچه ها میان شکایت میکنن به ما که مادر ما روز ماه قدیمه داره حالا ما چه کنیم؟ روز ماه قدیم نبور بگیریم یا روز ماه تازه اگر بگیر روزه ماه تازه میگن پس چه کار کنیم این مادر ما میگه قدیمه میخواه ما میگیم به مادرتون حالی کنید که سال ماه شمسی این همون سال و که دولت ایران قبول کرده کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه خوب تجربه کرد که این سال شماری بهترین سال شماری دنیای اونا قبول کردن وقت ما تأثب بخاطر بدیم قبول نکنیم و اگر روز ماه قدیمه داشته باشید بدونید نمازی که میخونید غلطه روزهای نبرتون غلطه روزهای گهنبارتون غلطه سال و مای روزه و درگذشتگانتون غلطه حالا بازم اون تحصیب خودتون بگید نه چه ازادی دروغ میگه اون قدیمه درست داره اینه که خواهش دارم وقتی یک نفر آمد و اندرز و نصیحتی داد گوش کنید نصیحت نیکبختان گوش گیرند اونی که گوش نکنه نیک نیکبخت نیست یکی از اصول دین زرتشتی عقیده به یکتایی پروردگار داریم. یعنی هر زرتشتی موظفه اون یک خدایی را که بعداً به نام اوغ مزد یا اهورا و مزدا خونده شد قبول داشته باشه حالا اهورام با چشم ظاهر نمی دید شوهرا نویسندگان همه اونچه که تحقیق کردند در شناخت پروردگار همه کمیتشون لنگ شد یکی میگه خدایا بلندی و پستی توی ندانم چهی هرچه هستی توی یکی دیگر از عرفا میگه صدها هزار سال اگر مردم جهان فکرت کنند در صفت و قدرت خدای یعنی اگر صدها هزار سال مردم دنیا راجع به قدرت و صفت خدا فکر کنند آخر به عجز معترف آیند که خدا دانسته شد که هیچ ندانسته این ما ولی عقل انسان معترفه که یک خدایی باید وجود داشته باشه که این زمین و آسمان و آن چه که به نظر ما عجیب و غریبه آفریده باشه در عین حال ایمان و عقیده و دل انسان هم معترف که یک خدایی هست آواز خدا همیشه در گوش دل است. گو دل که کند گوش به آواز خدا ولی از اون جایی که پیامبران با مردمان ساده روبرو رو بودند آمدند صفات خدا را به مردم شناسندند مثلا ما وقتی که اوستا میخونیم اولین چیزی که میگیم بگیم به نام ایزد بخشاینده بخشایشکر مهربان ایزد یعنی قابل مد و تعریف این از یزشنه یزشن و نیایش یعنی درود و ستایش پس ایزد باز یکی از اسمای خدا شد یعنی کسی که قابل مد و تعریفه بخشاینده یعنی بخشاینده نعمت بخشنده نعمت این همه چیزهایی که در دسترس ما قرار داده شده از بخشش هست و بخشایشگر یعنی بخشنده گناه یعنی هر کس در پیشگاهش توبه کند از گناهی که کرده او میبخشد ها بعدن هم اضافه کردیم به شرط اینکه دوباره تکرار نکنه باز برای اینکه خدا را بهتر بشناسیم ما یک اوستای دانیم به نام صد یک نام خدا این صد و یک نام خدا همش اسم خدایه ولی در واقع وقت خوب پکرش کنی صفات خدایه از اون جایی که ما خدا را نمیتونیم بشناسیم آمدیم هر کس به زبان خیش نامی بنهاد و خاندش بدون نام یعنی ما آمدیم اسمهای متعدد رو خدا گذاشتیم مثلا این صدی نام خدا وقتی خوب فکر کنیم تمام صفات پروردگار را در اون ذکر کرده مثلا اول ایزد که عشق کردم یعنی قابل مده و تعریف هر ویست توان یعنی توانای کل هر ویست آگا دانای کل هر خدا مالک و خداوند همه چیز عبد یعنی بدون آغاز قبی انجام بدون پایان ان آیاب یعنی نایابه کسی نمیتونه او را پیدا کنه ان آیاب هم آیاب او همه را میابد او همه را میشناسه او همه را میتونه درک کنه از تو ناپذیره نپذیره افریفته کسی نمیتونه او را گول بزنه فریب نخوردنی مخصوصا در ینگی حاتام اشوزرتوش می در بین مردان و زنانی که دارن خدا را عبادت می کنند، تنها اهورامزده میفهمد که آیا این ستایش اونها ظاهری یا باطنی پس برچنین مردان و زنانی که واقعا ستایش خدا را به جا می آورند درود می‌فرستیم. پس خدا را نمیتوان فریب داد ما میتونیم ظاهر ظاهرا همدیگر را فریب بدیم باز اینجا یکی دیگر از شوهران میگه من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش چون به جانان آشنایی از بدان بیگانه باش گر قده از دست مستان میخوری مستانه خور ورقدم در راه مردان مینهی مردانه باش یا مسلمان باش یا کافر درویی تا به کیل. یا حریم کعبه شو یا ساکن میخانه باش دروی خدا درک میکنه او فریب نمیخوره افریبتا و بی فریبتا یعنی او کسی را درک فریب نمیده ادوهی یعنی دو تا نیشت این که بعضیها را مطمئن به دو خدایی میکنن میگن یک خدا را میگیم مبدأ خیر یکی مبدأ شر در یکی از اسمای خدا ادوی یعنی دو عیکتن نیست یکتن او یک تن است یکی است چیزی را فراموش نمیکنه، کنه شنایا یعنی شنونده و شناسای همه چیز است مینو نهوفت مینو یعنی عالم معنوی عالم روحانی و مینو نهفت یعنی نهفته در عالم روحانی حتی در عالم معنوی هم اون نهفته است اترس ترس نداره از کسی نمی ترسه ابیش بیش یعنی درد و غم و غصه عبیش یعنی بی درد و رنج و غم و خدا هم چون یعنی همیشه یکسان است همیشه یک جور است فیروزگر یعنی فیروزی دهنده است و غیر از خدا دیگه بالاتر از خدا فیروزی به کسی نمیتونه بده بعد داور یعنی قاضی که بعد میدیم راست راست داور تیز تیز داور یعنی داوریش رو راست و درسته و تیز تیز داور یعنی تن تن داوری میکنه دیگه پرونده را یه مدتی نگه نمیداره که بعد حکر رو بشه راست راست داور تیز تیز داور و آخر کار از بین اینهای که انتخاب کردم بوختار و بوختن یعنی نجات دادن و بوختار یعنی نجات دهنده حالا بعدن می بینیم که ما زردوشیان بر روان در درود باد بر روان مردان پاک درود باد بر روان زنان پاک درود باز بر روان همه نیکان و پاکان جهان درود باز در دو مذهب یعنی مذهب یهود و مذهب اسلام که سیاست و دین توعمه اشول و فروع دینم هر دو در کتاب دینیشان آمده و هر دو از پروردگار گفته شده به قول پروردگار آمده ولی دو دین دیگر یعنی دین زرتشتی و دین مسیحی که سیاست از دین جداست اصول و فروع دین هم از هم جداست و پیغمبر فقط اصول دین آورده به خصوص در کیش زرتشتی زمانی که زردوشت ظهور فرمود مملکت ایران متمدن بودن مردم شهرنشین بودن سهول بودند، بودن پادشاهی داشتیم به نام گشتاس به کیانی این پادشاه پنجمین پادشاه سلسله کیانی بود تمام قوانین باسته اجتماعی و سیاسی لازم به وسیله این پنج پادشاه برقرار شده بود در کشور. به قوانین دادگستری قوانین تجارات قوانین آموزش و پرورش و حتی قوانین ورزش یعنی صبح که میشد جوانها جوان ها با گرز و کمند و, و سپر و اینها از دروازه شهر بیرون می اومدند و در فضای باز و عملیات قهرمانی می پرداختند که بعد از اسلام هم وقتی ایدانی میخواستم خواستم این کار رو بکنه عرب نمی داشت و میخواست می گفت که نباید این تمرین ها بکنید می دوباره بر ما غلبه پیدا کنید اما ایرانی یک کلاه شهری براشت و و این ورزش ها رو برد در زیر زمین با یک در کوچکی و به جای گرز های سنگین میر به کار می بردن. به جای کمان وزیح کردن کمان همون کباده به کار می بردن. به جای سپرهای سنگین سنگ به کار می و چون در جنگ قدیم یک وقتی که جنگ درگیر می چهار طرف سرباز می باستی دفاع کند اگر سرش دیج می رفت می افتاد چون می باستی که راست و چپ و چمال و جنوب و اینا مرتب از خودش دفاع کنه پس چرخ زدن یکی از ورزش جنگی اون زمان حساب می که هنوزم هم خوشبختانه ادامه داره حالا در مذهب زرتوش وقتی که زرتوش پیدا شد زن لورز، زن کرد، زن بلوچ بایره امدی، ممسنی، مثل هزار سال پیش مثل حالا سر تا پا محیوب بودن چند این چیز سر می بستن پیرهن تا موچ دست دامن تا مچ پا حتی وقتی که سوار گاو یا اولاغ می شدن یه لغش راه کنن علاوه بر شلواری که می پوشیدن یک شلیت هم روی شلوار می هم پشت سرشون هم زانه می و تولید شهوت در مردها نمیشد. پس کسی از زرتوش نپرسید لباس چجور باید باشه اگرم میپرسید میگو و که الان دارید کافیه حالا اصول دین زرتشتی با فروع دین فرق داره اصول دین را زرتشت از جانب پروردگار آورده و اصول دین مثل خود پروردگار ازالی و ابدیه ولی فروع دین را زردوش فرمود به اهده دانشمندان و بزرگان قومه و فروع دین یعنی راه رسیدن به اصول دین مثلا یکی از اصول دین ما یکتا پرستیه ولی قبله فروع دینه طرز نماز فروع دینه وزو فروع دینه چند وقت در نماز بخونی اینا از فروع دینه به چه زبانی بخونی از فروع دینه مثلا خورده عرصه اگر نگاه کنیم به سه زبان نوشته شده بخشی از خورده عوستا زبان عوستاست بخشی زبان پازنده بخشی هم زبان فارسی مثل تندرستی و پیمان دین و پنام ستاهش و صدو اکنام خدا و آفریگون ها و و مانند اینها ها هم اضافه شد و الان ما همه اینا را عبادت تصور میکنیم یکی دیگر از اصول دین ما قبول رسالت عشوزرتوشت از جانب پروردگار حالا اصولش چیه؟ گفته عشوزرتوشت را باید خوب درک کنیم و پیروی کنیم این اصول دینه ولی فروه زردوش چه زمانی متولد شد که گذاشت موجزات چی بود اینا همه از فروه دینه و هیچ وقت اینها را در گاتا که در توش نوشته نیامده ولی امروزه کسی نباید از پیشواه دین بپرسه که وسیله زد چیه امروز دکتر باید اینها را به ما جواب بده دکتر باید بگه چه گوشت حرامه چه گوشت حلال ولی یک زمانی دوره جهالت و نادانی بشر علم و دانش را همه نمیتونستن کسب کنند فقط علما میباستی که هر دانشی یک اندازه کمی یاد بگیرند و اون وقت کسی که واقعا همه علوم را یک کمی میدونست اسمش داشتن شمسال علماء فرزند و او هر داشت داشته بیا تو اینجور چیزهای دستور بده یا فلون آبی آیا بنوشیم یا ننوشیم این دیگه در دین زرتشتی کار پیشوای دین نیست کار نوشته های سابق نیست این را دکتر امروز باید به ما بگه یکی دیگر از اصول دین ما بقای روحه ولی مراسم دینی بعد از مرگ اینها از فروعات دینه ترز کفن و دفن مرده از فروعات دینه مثلا ما در تاریخ میخوانیم زمانی که جمشید پادشاهی می کرد اون هم در آسیای میانه بودند در خارزم از جنوب سیبری تا شمال دریای مازندران و دریای دریا سیاب و دریاچه بارخاش و بایکار یک دوره یخبندانی شروع شد که در وندیداد میگه ده ماه در سال زمین مستور از یخوبرف بود فقط دو ماه هوا ملایم بود اون هم نه اندازه که برف آب بشه حالا اگر کسی اون موقع میمرد نمیشد زمین یخ زده را بکنی اگرم میکندی با هزار زحمت و مرده را لای یخ و دفن میکردی متلافشی نمیشد پس بهترین راه و عاقلانهترین راه دفت و انواد این بود که بگن در بالای تپه در معرض دید لاشخرها باشه بعدا کم کم وقتی که آی مجبور شدن مهاجرت کنند در اثر سرما، اولین گروه از طرف افغانستان و پاکستان رفتن تا هندوستان اونجا میبینیم هندوها مرده ها را شروع کردن به سوزاندن. و شاید این اولین طرض دفن انواد بوده در بین آریه ها برای که اینا حفظ کردن ولی باز یک عده کهنپره پرست هنوز هم دنبال این دخمه و اینها بوزند و حتی بعدام هنوزم هنوز هم یک عده در هندوستان معتقدند که اگر مرده را به دخم نگذاری بهش راه بهش دراز پراهم نمیشه یا راه دیگه بعدا وقتی ایرانی ها وارد این سرزمین شدند، مخصوصاً با مردمان غرب ایران مثل باولی ها و کلدانی ها و آرسوری و اینها همسایه شدیم، زمین گرم بود، اینها مرده را دفن می‌کردند، ما هم مرده را شروع کردیم به دف کردن بعدا می پادشاهان حخواامنشی، وقتی که مصر را گرفتند اونها دیدند فراعنه مصر را مومیایی میکنند عدهای از پادشاهان هخامنشی هم گفته بودند جسد ما را مومیایی کنید که بمونند اینم کردیم و کسی حرفی ندارد. پس ما تا حالا چند جو ترز کفن و دفن خودمون را عوض کردیم آب از آبم تکن نخورد برای که در گاتا اصلاً ذکری از طرز کفن و دفن نمیاره چجور نماز بخونید ذکری نیست یا رو به کجا کنید و نماز بخونید ذکری نیست و زردوش اینها ما را آزاد گذاشته و حتی معروفه زمانی که دربار گشتاس پس از مباحثات زیاد با زردوش دین را پذیرفتند، گفتن خواب زردوش بیا با ما کمک کن ما میخواهیم یک قانونی بسازیم که پایش بر یکتاپرستی پرستی دین تو باشه پایش بر اهورامزده پرستی باشه در دوش حاضر شد حرفای اینا را شنید و گفت من نیامدم حکومت در حکومت ایجاد کنم یعنی نیامده کودتا بکنه بر علیه پادشاه، پادشاه به جای خود احکام مملکت که تا حالا برپا شده باید اون چی که با دین یک تا پرستی منجوره ابغا کنید اونچه که مخالفه از بین ببرید شما کارتون اینه و بعد فرمود بدانید اصولی که من از جانب پروردگار رو بردم باید مثل خود پروردگار همیشه ازلی و ابدی باشه ولی فروع دین یعنی راه رسیدن به اصول باید دانشمندان و بزرگان دین با هم بنشینند، و اونها این را درست کنند. و می بینیم در اصل سیاست از دین جدا بود. یعنی زشت رهبر دین بود و گشراشا رهبر سیاست. و الانم وقتی که ما آفریقن میخونیم اون جایی که موبت یک مود بالا میکنه، ما هم یک انگشت بالا میکنیم، یعنی فرمان احورا وقتی که نام پادشاه را میبره مود دیگه بلند میکنه ما هم دو انگوش یعنی فرمان پادشاه کشور رهبر کشور فرمان روای کشور بعد این هر دو انگوش را به سر و چشم بوسیم و قبول میکنیم یعنی در هر دوره ما باید دو فرمان را گوش کنیم بر کنیم. اول فرمان دینه که ش در برای ما آورده دوم فرمان فرمانبرای کشور هر کس باشه. البته همیشه در اوستا سفارش میکنه که پادشاهان دادگر را فرمان برید. و می در زمان هخامنشیان در زمان ساسانیان، هر پادشاهی که به نظر مردم میدادگر برای براله اینا میشوردن و اینها را از سلطنت خل میکردند. ولی بعدا ما گرفتار حمله های متعدد شدیم عرب آمد ترک و مغل و چنگیز و تیمور و اینا آمدن و ما در برابر ایرانیان دیگر هم اده کم هم قدرت بونم کم بود و نمیتونستیم بر علی اینها بجنگیم تا آخر پس به ما گفتن وقتی یک حکومتی را اکثریت مردم ایران پذیرفتن شما هم باید بپذیرید از این جهت وقتی اکثر مردم ایران متی چنگیز و تیمور شدن ما هم خواه قبول کردیم و پذیرفتیم پس این را همیشه در نظر داشته باشیم خیلی این موضوع گمراه کننده است فروع دین جداست از اصول دین فروع دین در هر عصر و زمانه باید عوض بشه زردوش فرمود حسولی که من آوردم نباید عوض کنید ولی فروع دینی که شما درست میکنید با تغییر زمان و مکان باید عوض بشه با بار رفتن سعت فکر باید عوض بشه با اختراعات جدیدی که وسائل زندگی راحتتر فراهم بشه باید عوض تغییر کنه حالا ما اون طبق روایاتی که داریم در یکی از کتاب های دینی هندی ها به نام ریگ که جزی از مهابارت هنندان است و بعد از گات های توشت از باستانیترین نوشته های دینی به شمار آمده میگوید، هنگامی که دین رو به زبال رفته و بیدینی در ترقیاست زمانی که نیکوکاران در اسرتند و بدکاران در اشرت آنگاه خداوند پیامبری را برمیگزیند تا نیکان را پشت و پناه بوده و بر بدان شکست آورد او یا مفاد این گفتار از گاتای عشوزرتش گرفته شده که برابر بند یک یسنای بیست و می فرماید هر وقت در جهان ظلم و ستم و خشم و زورگویی توانگران خودخواب و فرمان مغرور مردمان ناتوان و بینوارا بیش از حد بیازارد و نیک و کاران و پارسایان گرفتار رنج و آزار ناپاکان و دروغ پرستان کردند روان آفرینش یعنی روح خلقت بشر، روح موجودات روان آفرینش به نمایندگی از سوی ستم دیدگان ناتوان در نزد پروردگار یک تا به دادخواهی برخواست گوید ای اهورا مزداد من که روان آفرینش هستم با دستای برف راشته از تو درخواست میکنم که مبادا هرگز نیکوکاران دچار رنج و آزار شوند و به پارستایان و کارگران درست کار از سوی بدخواهان رنج و آسیب رسد یا بر آنها قالب گردند یعنی همه میگن وقتی یک پیامبری ظهور میکنه که ظلم و ستم و سخیری به شدت در حال پیشرفت باشه حالا میبینیم آریا ها وقتی وارد این فلات بزرگ ایران شدیم اقوام عرب مذهب دیگر سامی مذهب دیگر که در حال و شرک و اینها بودند مثل بابلی ها کلدانی ها آشوری ها اعلامی ها اینها بر سرزمین فلات بزرگ ایران حکومت میکردند و ها هزار سال تحت فرمانروایی اینها بودند که در تاریخ ما این را دوره هزار ساله زهاک تازی مینامند اینها پرست بودند و یکی از خدایانشون هم شکل اجه بود یا مار و سالی چند بار برای این بت مارشون از غلامان و بردگانی که در جنگ اشیر میکردن اینها را جلو این مار یا عجله هاشون قربانی می کردن. که بعدا در ادبیات ما این مار فر دوش زحاک در آمد و هر روز می دو تا کله آدم بهش بدن بخوره این روایاتیست که از اون حقیقت به شکل افسانه به ما رسیده پس ایرانی ها می دونید گرچه پیش از درتوشت مذهب شرک و طبیعت پرستی داشتیم ولی ایرانیان هیچ وقت بود پرست نبودیم و چون مدام آیه در حرکت بودند نه معبد می و نه بت برای که اگر معبد می ساختند یک جا ساکن نبودند مدام در حرکت بودند اگر بوت هم می ساختن این بوت های سنگین مدام رو اولاغ و گاو و آتر و اینا در حرکت اینا محال بود فقط این آلیا های که دامپربر اولی بودند، همیشه یک کلک آتش در دست اون هم در نزد پیرزنی که همیشه سوار آتر یا اولاغ یا گاو می می بایستی این کلک آتش را مرتب یکلی چوب روش بذاره که خوش نه خاموش نشه که وقتی به ایشگاه یا جایی که توقف میکردن میرسن این آتش چوب روش بگذارن و آتش روشن کنن و خوراک بپزن برای که اون زمان کبریت نبود و سال آتش نبود و همیشه می که اون درف آتش یا آتشگاه یا اجاق همیشه روشن و پاک باشه و این اصطلاعی که ما هنوزم دارین اجاغت روشن باشه چراغ خوند روشن باشه اجاغت صحب باشه از اونجا شروع میشه حالا این گونه مردمانی که نه بت میساختیم و نه معبد در یه ادبابلی ها و کلدانی ها و آسوری های که شهرهای بزرگ ساخته بودند، بدکده های بزرگ داشتن خدایان متعدد داشتند، ما مدام ما آریها، ها با سامی ها در حال جنگ و جدال عقیدتی و دینی بودیم و اینجور موقعیتیه که عشوزر توشت به پیامبری برگزیده شد پس همین شادروان فردوسی هم اشاره ای به این وضع میکنه میگه زمانی که مردم ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی بریزند خون از پی خواسته شود روزگار بداراسته اونگا خداوند فردی را همانند اشودرتوش معمور اصلاح بشر کرده تا به دست او به ساعت ستمگران برچیده شود و ناتوانان و بینوایان به توان و نوا رسند باز میبینیم اشاره از این در یسناه بیستو بند هفت شده میگوید پسانگا مزده پاک کلام الهام بخش خود را به صورت آیات اوستا که فرمانهایش سراسر بر راستی و درستی استوار است از برای رستگاری جهانیان به زرتوش سپرد و او را مأمور رهبری مردم جهان ساخت حالا چرا پیغمبر را به وجود میان؟ یکی از شوهرهای ما میگه که چون خدا خود می آگد در ایان نایب حق اند این پیغمبران چون خدا خودش نمیاد به شکل آدم در میاد بیاد و به ما انبرز و نصیحت بده پس پیغمبران را به جای خودش به جای نیابت به خودش اینا را میفرسته خود محل وای گردد گوش جان وای چه گفتی از حس نهان این مولانا مثنوی میگوید باز در یاسنای هشت راجع به رسالت اشو در یکی از مهمترین رسالت های هر پیغمبر رهبری بشر به سوی یکتاپرستی پرستی و راستی و درستی است. تا به وسیله آن صلح و آرامش مردمان فراهم و دست ستم پیشکان و سلت را از دامان ستم کشان و در مندگان کوتاه گرداند. اشودرتوش در توش در مورد رسالت خود، برابر یسناع بیست و بند چهار میفرماید ای اهورامزدا من آگاهم که مرا برای رهبری روان مردم جهان ای و از پاداشی که برای کردار نیک و بد میبخشی خبر دارم و آمادم تا زمانی که مرا تاب و تواناییز به مردم بیاموزم که به سوی راستی را پوین پیامبران هیچ منظور دیگری نداشتند. منظورشون این بود که حقیقت و درستی و راستی و اینها را برای مردمان بیاموزن بیارن و تا جان در بدن داشتند. و حتی تا مرحله شهادت صرف نظر از تن و جان و دارایی و خانواده خود کردن با اغلبشون به شهادت رسیدن باز زردوش میفرماید ای اهورا مزدا من که زرتشت هستم از تو درخواست می کنم که به من تاب و توانایی بخشی تا از پرتو راستی و پاک منشی توانم آرامش و آسایش جهان را فراهم سازم ای مزدا به من نیروی راستی و پاکمنشی و شجاعت روحی عطا فرما تا مردم جهان مرا به آسانی بپذیرند و جهانیان آموزش های مرا دریابند چه برای این کار بزرگ تنها چشم و امیدم به یاری و پشتیبانی توست حالا خدایانی را در نظر داشتند